و از یک سو حملات شدیدی بر باورها و اعتقادات اسلامی از طریق پیج ها و فضاهای مجازی و به این دهکده جهانی بر عقاید و باورهای اسلامی صورت می گیره شما تقاضا می شه که شما مختصرا و مفید در مورد اثبات عقلی بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم توضیح بفرمایید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 شما تصور کنید ما میاییم حالا مثلا در موضوعات مختلف حرف میزنیم اما مبحث اثبات نبوت هم برای مسیحی هاست، برای یهودی برای زرکشتی کنیم برای, برای بودایی ها، برای هندو ها, برای کمونیست برای تمام افرادی که در جهان زندگی میکنند اما به نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان ندارند، این دیگه برای همه اون هاست.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 همون گونه که ما هم کتاب‌های اونها رو قبول نداره ممکنه الان ما با یک شخص مارکسیست حرف بزنیم ایشون کتاب کاپیتال کارل مارکس رو بسیار بسیار کتاب مقدسی بدونه ممکنه مثلا ما با یک شخصی که مثلا نیایش‌های بودا یا کتاب آموزه های بودا رو با یک بودا با یک بودای حرف بزنیم اون برای ایشون اتمام حجت باشه ولی ما اصلا قبولش نداشته باشیم لذا راهکار چی هست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 در حال به صورت گذری به صورت خیلی خلاصی که ان برای جوانها ها و برای مخاطبان عزیزمون قابل استفاده باشه این نکات رو عرض کردم تا تبیین مسئله بشه و اهمیت موضوع مشخص بشه یک نکته دیگر هم هست قبل از ورود به بحث اینکه وقتی که ما می به صورت اقلی نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو به اثبات برسونیم باید از مخاطب بپرسیم جناب مخاطب مخاطب بزرگواری که به حرف‌های ما گوش می‌دی و از ما اثبات می‌خوای یا مثلا ما برات اثبات انجام میدیم شما به حرف‌های ما توجه می‌کنی شما چه جور اثباتی می‌خوای آخه خیلی مهمه سطح انتظارات خیلی مهمه شما اثبات عقلی می‌خوای اثبات منطقی می‌خوای اثبات تاریخی می‌خوای اثبات علمی می‌خوای الان من با افراد حرف زدم گفتن شما باید وجود خدا رو با علم برای ما ثابت بکنی با علوم تجربی خب گفتم آخه چطوری علوم تجربی کار خودش رو انجام میده شناخت پدیده ها هست تعبین پدیده های آم... یعنی فعل و انفعالاتی که در طبیعت انجام میپذیره اون چیزهایی که با حواس مادی درک میشن مثلا من نهایت کاری که علوم تجربی میتونن انجام بدن اینه که پیچیدگیه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 اصلا شاید اون چیزی که میخواد هیچ کسی نتونه این کار رو انجام بده یعنی اصلا شاید این نشود باشه نشدنی باشه یعنی این طرف بخواد یک بهانه بگیره بگه بگیر نبوت مثلا یعنی یه چیزی بگه مثلا بگه باید پیامبر رو همینجا ظاهر بکنی مثلا اگه پیامبر وجود داره همینجا مثلا از زیر زمین <تصفح> یهو الانجلوتیش من بیاد بیرون خب اینا که نمیشه لذا ما باید اول برامون مشخص بشه که سطح انتظارات فدجی هست و پس از اون وارد مسئله میشیم. حالا انشاءالله بنده یک دلیل تاریخی، یک دلیل اقلی که بیان تاریخ هست اما اقلهای کنشگر، اقلهای کنکاشگر، اقلهای اهل تحقیق و تفحص رو من فکر میکنم آنچه که استنباط خودم هست. همانگونه که بارها مشاهده کردم این استدلال افراد اهل بینش رو واقعا به تعمل وامی داره. اون هم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 با توجه به تمام گذاره هایی که وجود دارند، با توجه به سن و سال رسول اکرم صلی الله علیه و یک فرد 100 ساله که نبوده یک فرد 98 ساله که نبوده بعد از چند ماه فوت میکنه بدون اینکه هیچ مثلا در بستر بیماری آنچنانی چیزی چی مثلا واقعا رسول اکرم صلی الله علیه و اگه از جانب خداوند نیومده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 واقعا این نکته قابل تعمل هست این دیگه به عنوان دلیل اول اثبات اثبات بس بکنم قرآن هست ببحث همون, همون قرآنی که همون زمان گفت این معجزه من هست و به عنوان دلیلی برای نبوت خودشون مطرح کردن کماکان این الان هم وجود داره الان هم وجود داره که رسول اکرام صلی الله علیه و سلم واقعاً این کتاب رو چگونه آورده خب اگه بگید خودش ثبوت خودش, خودش درست نخونده بوده صدا زیب شده دوستن تماس گرفتن هلا در جا صدای بندی برگشت بله بله الان بل. صدا خوبه والا تماس گرفتن حالا ببینیم اگه هم دیدیم تماس دیگری میاد مجبوریم که یک کاری انجام بدیم چون که من با یک با گوشی فصل نیستم به فسلینگ بستم ولی اگه لازم شد روی افلا یعنی روی حالت هواپیما قرارش میدم اگه لازم شد ببینیم اگه تماس دیگری نباشه خب برادر این رو میگفتم که این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 کپی یعنی چی؟ کپی یعنی اینجا ده تا خطه میارم ده تا خط رو در اینجا مینویسم چرا مطالبی در قرآن وجود داره حالا مثلا اومده کامل تر از آنچه که در اهل کتاب یعنی در کتاب‌های مسیحی‌ها و یهودی‌ها چرا کامل تر از اونها رو خیلی بادقت و خیلی مطالب اضافه بر اونها یعنی اومده دین اونها رو کامل کرده. اون ق... اگه میگید کپی اون قسمت‌ها اضافه رو از کجا اورد؟ قسمت‌های اضافی که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 و این مطالب رو اومده حالا مثلا اومده چی ادامه اون اومده نوشته که باز نمیشه ولی خب به هر حال خب مطالب رو شنیده خوب مگه فقط رسول اکرم گوش داشته مگه دیگران گوش نداشتن چرا فقط ایشون شنید چرا دیگران نشنیدن اصلا چرا ده. یا مثلا میگن استدلال دیگرشون بله استاد جلو کلامتون استخای میکنم همین نکته رو ابن اسیر رحم الله در کتابش میگه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 بله بله برادر یعنی شما برادر اگه قرار باشه بنابرای شنیدن باشه خب چرا فقط پیانبر شنید یا مثلا میان میگن یه چیزای عجیب غریبی مطرح میکنن میان میگن از تاریخ 25 سال سکوت کرده ببخشید تاریخ 15 سال سکوت کرده در مورد پیانبر از 25 سالگی پیانبر تا 40 سالگیش گم هست در تاریخ و گم شده و در تاریخ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 بهتره از اینکه این مسائل رو بگید. یه چیزهایی میگن که خودش یعنی کاملا خارج از دایره انصاف هست یا مثلا میگن وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با اموش ابو طالب در دوران جوانی رفته با بحیرای راهب دیدار کرده در سفر شام و بحیرای راهب گفته من این مهر نبوت و اینا این مسائل وجود دار اینا خب خودتون دارید میگید که به صورت اتفاقی با بوهیرای راهب در جوانی مگه اینا چه قدر با هم دیگه بودن در یک سفری خیلی خلاصه همدیگر رو دیدن مگه ارتباط اینا چه قدر بوده مگه چه قدر با هم دیگه حرف زدند مگه در اول جوانی چه قدر این مطالب بهش گفته شده اصلا برخی از مطالب قرآن شعن نزول دارن بوهیرای راهب چگونه اطلاع داشته از شعن نزولی که مثلا در اینجا اینا کفار و پیمان شکنی کردن در اینجا مثلا انقطاع مثلا باید بگی وقتی که در مورد روح از پیامبر فرس کرد نگفت ان شاء الله یک مدتی وحی نیومد بعدن آیه اومد که باید در مورد آینده حرف میزنی بگی ان شاء الله اگر بحث حیرای راهب هست خب چرا برخی از آیات شأن نزول دارن یعنی این رو چطوری قابل حل هست اجازه برادر میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم این قرآن، این کلام